حاله الطیبین و طافلین المعصومین و لحظه دائمه فعلا عداد و شمعین اللهم و حمد رحمتی به احتیاط یا انتصال اجمالی صلاحا حالا میخواد علمی باشه یا لنی باشه بس در مقام انتصال ارسو که مرتبه طوری و ارزی بودن امتصال اجمالی است این روز توضیحاتی را این جد عرض شد و گفته شد که فعلا اساساً کلمات مرموم احصاب رو متعرض میشیم تا بعد درستیم به تحریکی مسئله دی روز نقطه رو که رکی دون که کردیم که مسئله قصد ورش بود در واقع احتیاط امتصال اجمالی در جمعی سوار مسئله اشکال معروف همون اشکال قصد که آیا قصد وش معتبرشون این معتبر باشه دیگه امتصال اجمالی نیمیشه اعتبار صحیح باشه و عرض شد به اینکه راجع به قصد وشه و قصد قربت و قصد عمر و اینها صحبت هایی بود که بزرش که به اسطلاح تمام اینها ممکن از در لسان دلیل اخت بشه و مبانی از رو متقدرین و متاخرین و احل سنت به نحوه اشاره اجمالی و یه مقضای به احسان در کلمات اینها هی علم مبنا. ما خیلی از این موارد علم مبنا خوشون نمیاده حق این است که قصد ورس دلیل برای اعتبارش نیست قصد تمید دلیل برای اعتبارش نیست و ممکن است در لسان دلیل اخت بشه و اصولاً دسته وجه و تمیز بعد از انتظار مذاهب کلامیه یعنی متکلمین از ها و اهل سنت اینها غاره و دسته وجه وردی تمیز شدن و الا دلیلی برش وجود ندارن چون که افراد زیادی غاره من مستاد میخوام بفرمایم به که حتی اگر بخیم عقلیه باز هم میتونیم برای عجالی بکنیم چون چیزیز که مردم را داشت قبلت دارن شاره نه دیگه اگر حقیلی شد این وچه شیشان تمام میسه نه که بحثای تبدیری رو ما فعلا وارد نمیشه این بحثای تبدیری شد طولانی روی به تبدیری شنید از شد که تبدیر بحث خودمون اصطداقا کلمات و گستان رو با بعضی از نکاتی که مربوط به خود کلمات متعرض میشین بعدم اینشانا به طور تفصیلی خود یعنی به طور مستقل روزادانه خود بحث رو انجام می‌دهیم. من استاد مرسا که رو بحث هست بحث در مقام سقوط تکلیف ایشون این رو مرسد جهت اولا کفایت انتصال اجمالی با عدم تمکان از انتصال تفصیلی اگر تمکان نباشه دیگه خیلی نکردن این انکسال تفصیلی مرادشون زنی یا علمی. لیکن ظاهرن مورد که باید علمی باشه که اگه علمی مشکل نداشت یکه زندی دو طریقه اولا مشکل نداشت خب مورد اول این است که انسان تمکان امتصال تفصیلی نداره برگرده به امتصال اجمالی که اسمش احتیاطی ها نداره این که افرام احتیاط ها و به حکم عقل و اقضا و حکم شرع و به حسن احتیاط این که احتیاط نداره وقتا فرمودن همچنوی که مرم فرقی هم نمی کنه در موال مجموعی باشه موال شوهه برگیه باشه شعبه موضوعیه باشه قبل از فرص باشه بعد از فرص باشه فرقی نداره بله بلکه اگر احتیاط کرد انسان نهایت تعبود انسان و عبودیت انسان در مقام امتصال همه مولاست درست کنم که خب ممکن است به ذهن بیاد چه خب شعبه برگیه و احتیاط هم چه خب شعبه ب چطور این مرادش مرادشون از شبهه بدویه چه؟ انشاءالله که آلا تو بحث اشتغال هم از فاهم کرد خواهدان هم در بابی شبهات بدویه که انشاءالله متعرض میشیم دو بحث هست یکی حسن احتیاط اونی یک بحث که بسیشون کنند لا اشتغال در حسن احتیاط اشاره کرد بحث دوم کفایت شفایت و موزی بودن احتیاط در شبهات بدویه کده قضبه اونی که الان مثلا به کلام مرحوم و مرهوم استاد در اینجاست بحث کفایت و موزی اون نمیشه نه مثلا فرض کسی شبهه داشت یا آیا جمعه واجب هست یا نه به مراجعه کرد دلیل بر وجود پیدا نکرد دقت میکن احتمال میده واجب باشه اما دلیل بر وجود پیدا نکرد لکن عملا انجام داد احتیاط کرد انجام داد سال دقت بکن سؤال د عملا یک سال دو تا سال سه سال قسل جمعه ر انجام داد بعد که انجام داد فهمید که قسل جمعه واجبه مثلا روایتی پیدا رو کرده خاستین تشرق خدمت بقیتالله پیدا کرد حضرت فرمود نخر آ غ جمعه واجبه دلیل پیدا کرد بر که قسل جمعه واجبه فرض کنید سوال اینه که آیا اون دو سال یک سال که قسل جمعه احتیاطن انجام داده مجزیع هست یا مجزیع نیست رون این که لاره که کفایت انتصال اجمالی حتی در مورد شبهات بدلیه مراد اینه چرا مراد واضح شد که اگر در مورد شبهات بدلیه احتیاط کرد و عمل رو انجام داد و برمورد واجب بوده آیا اون امتصال اجمالی یعنی احتیاط کافی هست یا باید دورت انجام بده؟ خب اونجا بید در موضع من شما رو خیلی از اول تا آخر همیشه شبه خیلی خیلی میگم میگن خب وقتی که انجام داد عنوان احتمال انجام داد الان فهمیزه عمرو داره این نمیشه باز اون نما اون قصف به خیلی عمر به عمرو به اون لطف که یا به تمیز که ناسم واجر یا مستحر تا حالا انجام به عنوان مستحر یا به عنوان احتیاط دارم مستحب باید کنه عمر میخواد باید احتیاط عمر درسته میکنه با عنوان احتیاط انجام داد بعدا معلوم شد که این واجبه آیا در مرطایه باید احتیاط بکنه خیلی هم یکی کافی پس رکت و تمیزه میخواد این که بکنه لاره در پیش که پاید که سال اجمالی در موقع در شبه بحریه اینه پس یک بحریه از که الان مشهور در لسان فقاهای ما و حسن احتیاط معلن به حسن احتیاط و اما ثابتا توضیح دادیم که هم بار تو این مدت توضیح دادیم که این پیش ما ثابت نیست و اینکه خیلی مشهور در ارسان این خیلی پیش ما ثابت نیست که اون اصطلاحایی که خود اتیان جمعی محتملات جزو عناوین حسنه حسن روشتین است اصلا خودش این عنوان حسنی یک کمالی داره انسان که انسان جمعیه یا مثلا ما یک ده حالا اون عقل نظر عملی رو هرکش موقعیم بگیریم مثلا خود این مطلب که آدم بیاد ایتیان جمعی محتملات مثل سر سر حس هم حالا از توی موقع معنا آیا خود ایتیان جمعی محتملات خودشی که از اناوین و محسن هست موفیم نه دلیل دقیق این چیمی چیزی که خودش یکی از اناوین حسن باشه مثل صد روز مثل ادا احسانت باشه مثل, باشه، مثل, مثل اخلاق حسن این چیزی دلیل برش نیست ان شاء اینجا الان ما متعرض نمی‌شیم متعرضش ایشا تو بحث اشتغال چون بود متعرض شد گفتن عقلن و شرعا به خاطر رواياتی که وارده ان اونجا متعرضش این واجبه به جهت اولا پس خلاصی درس آیا این شخص که عمل با انجام داده به قصد هم نبوده شرطه تر شوهه هم بوده احتیاطن انجام داده در معنوی واجب بوده آیا کافی ظاهرا کافی باشه مشکل خاصی نداره ولی نمی‌دونه این نکشه فرات نوچی قصرشو قصرتر میدونه یعنی به عبارت دیگه من اینجا مطلب رو صاف کنم آیا اینا تکرار میکنه یه تکرار نداره ما در باب و اطاعت این رو میخاییم عملی رو که مولا انجام گفته انجام داده روشه اگر عبادی باشی یک نحوه اضافه ای به مولا بشه خلاصه اتیان معمولده در عبادی ها به اضافه اصل مولا میشه شده میمه یک نحوه اضافه ای که این عمل رو بخواست حالا اسم شخص عمر قصد قربت قصد تمیز برچی بخواست میشه اونا اسمانش باید میمه ما اطاعت در با اطاعت خیلی زیمی هم در قیل تعدوزی این قیل هم نیم خواهیم اپیان معمول به مثلا ایشون روایت در مالا اموار ساباتی در خصوص اینا زرده است نه مطلق زرده اینا یعنی مایو شروحی سه بار شسته بشه تو آم از داریم از معاسمت افتر وجودی که برد سه بار مشهور بین اصحار ما استهباه گفتن حالی کسی مرتب میشد سوا قالب استهباه هم بود برمان که نفر آواجه به سوا آلا با دو همون زلطان رو میشود خب نباید کسی شده دیگه ما در واقع تعبودیات یا در واقع تهارت و نجاس و تا احکام همون واقع رو میخوایم حالا یکون واقع احدیاز رو انجام بوده خب بذاریم چون ما شده پس در واقع تعبودیات ما واقع رو میخواییم در باب ابوابی یا واقع با اضافه مولا ما میشدن چه تمیز بدیم بحث وجمش میکنیم به قاعده لطف به قاعده عقلی به این صورتن خداوند متعال کمال معرفت یک از هر وقت میخواست با. ما بگیم این عمل با اضافه تنزل مولا انجام بدیم قص جمله دو سال انجام بده. بعد من منظور واجبه منجی همین که اضافه الالمولو کرد این دیگه حالا ایشون در اینجا توضیح اینقدر حیک تکرار میکنن ای تکرارش و حسن و استرش اینو بحث کلامی داشتن بیشتر نکته کلامی بود ها از کلام ما و یه نکته فقط این بوده که خود این عمل פי نفسه اینو قيام عقد و دین خاطر میخودش حسن نیست اینه باید مثلا ببینیم که شارک آن کرد حسن میشه این واژه یک عنوان شده خدا, خدا در ضمن بحثشون بهش اشاره کردن تا اون دست ورد نباشی موجب حسد نشی این بحث اخلاقی پیش کشیدند ما هر چیزی چیزی ندیدیم برای ما اینکه در نه. میگن تا شما اسق نکنی اون عنوان رو عنوان قصبه جمعی که شاره ام کرده لث بوده بر اثر وجه لث نرج رو به این معنا بگیریم تمیز رو دیروز از اج کا تمیز و واجب اینه واجب می دونن آخوری اج کرده حالا ایشون چیه بعضی‌ها قصد تمیز رو غیر از واجب میذارن واجب یعنی همون قاضی لز تمیز یعنی که این واجبی یا مستحبه اینه قصد تمیز بوده بعضی‌ها برادرام تو درس زالشون میگن حافظه ما خراب میشه تو درس راه بجونزی شده ایشاز ولااینا میگه که قصد واجب میخوره به تمیز در کل عبادت تمیز میخوره برعظا مثلا باید رو انجام بیدم چون مستحبه هم دیمی کنم چون واجبه اجزا تمید رو به اجزا زدن ورش رو به کل در حمل زدن قصد ورش مثلا نماز زور هم خواهیم وجوده ناپل زور هم به استعبابه ها یکیل استعبابه ورش رو به این محن ها گیرد رو با کمیز، آی خوی هم با هم حد کردن پس تا ورش رو با تمیز بکرم که بکرم عقد بکنیم برای جنونجی هم به طور اجباریه به 5 روز مثلا یک انجام نه می میخواد بده میگردن خود این عمل تا اون قصد خود عنوان حسن پیدا نمیکنه بحث بحث اصلا این رخا... شدن و شده شدن شما چیزی نیست اگر عنوان نمازی عنوان لطف عنوان امر الهی نکریم حکم پیدا نمیشه چون بحث, بحث برای... همین بحث کلامی رو پیش اگر مثلا برای تو از این چه اما به قصد ورود ایمان چاسته از این اول نبود نه بحث قصد ورود نیست اینجا قصد ورد بیمه پس این بحث اول ایشان بحث دوم ایشان از جهت و اگر امکان امتصال تفصیلی باشه من از این میخواد اول تقریبا کل عبارت ایشان رو بخونم و نقاط اصلی بحث رو متعرض بشیم تا بعد خود بحث رو دلارانه ایشون که این هم دو صورت داره یکی توصیل یاد ایشون توصیل یاد و عبود و ایقاعات و, و همه جدو توصیل یاد ایشون یه در توصیل یاد همی جای اشتال نداره که انسان میتونه امتصال اجمالی بکنه با تمکنه از انتصال تفصیلی مثلا یک آب یک ذرف یه هسته آب یک ذرف هم گلاه میخواد تحقیق بکنیم ما دستانو با هر دو اگر با گلاب باشه پاک نیمیشه با آب پاک میشه به نهایی به پاک میشه این بسه مثلا اول با گلاب میشه بعد با آب میشه به هر حال ایشون میگه چون قرار واضحه بعدم وضعیاتم بعد همینطوره با اینکه تمک کن داشته باشه مثل طاقت و نجاست و بقیه احکام و چیز بعد ایشان نهار کردن حالا ولکن استشکر شیخان الانساری در این نصبه ارتقاط جلسه هم مراجعه کنی یه بحث است مرمون استاد در اینجا به نهر اشاره آوردن یک بحثیست تو مقاصد جایگاه خاصی داره شیخ هنسالی گفته احتیار در عبود و ایقاهاد نمیشه چون با جرگون و نیت نمیسازه اشغال شیخ اینه چرا؟ چون مثلا فرس کنید شما میتونید در باید مراجعه بکنید دونید سیقی نکاح همکه توس یا زربشتو میگید مراجعه میخوا هر بول اوشون میگه وقتی هر دروخوندی شما جزمونیت نداری که اشکال مرموم شیفی شما نیم توی من الان ایجاد نکاح رو با این سیغه می کنم. ایجاد این امر اعتباری رو با این سیغه می کنم یا ایجاد رو با سیغه دوبار می کنم لذا با جزمونیت نمی سازم این اشکال مرموم شیف اصطار فرمودن که این اشکال محصلی ندارد خب مطمئن شما مقرر نمی شنه استاد نیشی خوب نیست که لایم جلام هست ساله من هم استاد فهمدن اشکال نداره. چون ایشان فهمدن مراد از جرز البته این رو من الروح هم کار شما مقرر اینجا اضافه کرده بود چون در مرحبت خودش در جرز دنیت اگه یادم رایسی نید تو مقاست در وقت اونجا گفته شده ما دلیل لحظی ولی مطلب نداریم ما روایتی یا آیهیی بر این که جزم و نیگه در عقود معتبره نداری حساب القاعده فهمیدن یعنی حساب قاعده و قلائی. که جزم و نیگه باید باشه چون اگر تردید بود تردید با ایشانه میسازه میکنه. میپنیم این حالا این مقدمه اول مقدمه مکیه در کلمات برموز بعد یه مراده به جزمی که معتبره جزم به اعتبار نفسانیه مراده ایشان از جزم به اعتبار نفسانی اینه. یعنی من جازمم که میخوام سید عقد نکاح رو نکاح از کرنید. یک امر اعتباری که مفادش و حقیقتش ایجاد قلقه اعتباری بین زن و شوهر در وعای اعتبار بکنید یعنی اصول ما امینه کنید اعتباری بین زن و شوهر بحث مثلا وچی و بحث بی و فروش و خرید و اینجور چیزا نیست ایجاد و اعتباری اگه حلقه زوجیت، زوجیه یا ثوابت در اعتبار و اعتباره، ولا ظرفیتو. ما هم استاد میگم خب این نیت که داره. حالا می‌خواد با این سبب باشه، می‌خواد به با اون سبب، چه شاء الله. این مهم اینه به ان يكون به اعتبار من به نفسه. لا مترددن في و تعلیق، اما اگر اینجور گفت، مثلا میگی که من مثلا زردوش تو که نفسی، اگر پدرم راضی بود. خب این دیگه جرد نیست چرا؟ چون انشا نکن و با بالدوریم بکرسیم پردن راضی باشه یا بردن راضی باشه پس جرد نشد و تعلیق و پر انشا یه تردید با تردیب منقه بر نقص منشفی اعتباره نفسانی فی اضاقال و هفته که ها مال این کنته ابن زید. حالا این این کنته ابن گفته شده شده شدیه تعلیق باشه چون این امر واقعیه این مثال کاش مثلا و هفتو که ها مال این رضی اخیی اگه برازم روزی این و هفتو که هده جرد نداره این شعر رو جازنه ایجاز نکرده بله لنده حقیقی اتباه اما این کمه مراد اینه و اما تردد فی انا سبب مملا اون این سبب اشاره امزا کرده خوب حالا اوزان اصاحب، اون سببی که تیشار امضا کرده، لحظه زرتشتوس یا انکه فلا فلان اشکالی دی، از این شد. در انشا که تردید نداره، از صادر من المونشه. بلکه او جاز مونده. قایطون آم کانوهمو ترکیدن، فی ان نسب المونظا شر آن، ای این تردیدش از نویی و شرعیه به عبارت دیگر، میگن اگر تردید از نادی که شاره اعتبار کرده یا نه این منافیه با اینشای من نیست من یا پول رو روح مثلا من این کتاب به شما بخشیدم اگر شاره اجازه داده باشه به من هده رو اگر خب میگه این اینشای دیگه مشکل ما داده رو که اینشای کرد اما حکم شرعی چون پرسید مثلا من با مثال من مدینم یا تفاره به من هست یا خونس به من من من احتمال میدم اگر خمس به من باشه هدیه من درست نره خوب دقت بکنید تصویر تا کل خرقهای محمد روشن کنیم من خمس به من هست اصلا فارسی ده ده دنگه جوتون واس خمس شدن کل دارایی که من دارم 200 زات من میخوام 100 زات هدیه بدن خب احتمال نه شار مقدس اجازه نده هدیه رو میگم که به خاطر که ما اگر هدیه رو اجازه بده این تردید نیست چون من هبه کردم در بحث اون یه بحثیست خارج از ارادی من که آیا امزا اگر کرده باشین این هبه درست اگر امضا نکرده باشی هبه نیست هبه وجود نداره هبه باطله برست رو انجام آقای خویی میخواد نگهنی که درست الفاظ و شاره اما اون الفاظ و اگر در شک کرده این تعلیق نمیاره مثلا من نمیدونم شاره با لرد گفته برای نکاح پاکی من گفتم مرکتو نمیدونم گفتم مرکتو که نفسی اگر شاره اجازه داد بعد معلوم تو مراجعه کنیم شاره اجازه داد ایشون بگه این تردیب این جرد منیده اون, اون کجا تردیده اگر گفت مکته اتا اگر برادرم راضی شد این تردیده بسنی فکر که برادر امراضی شد مطعه مطعه نه میگه این حکم که داره میگه جازم نیست که با این مشروع داره مهمتر می شد نه که به اعتبار هست اما به حکم شرقی جازم نیست اگر به حکم شرقی جازم نبود به این شای رفتی نداره البته اشکالی که ایشون فرمودن یه مقداری اشکال آی باعزی الان بادیشون اشکالشون میکردن این اشکال در حقیقت به نظرم یا در درست نفرموندن یا مقرر این در حقیقت الان من حالش شوان داریم میفرمونی یه چیز زندتون من بگم بودم این در حقیقت اختلاف بین ایشان و مرحوم شیخ دیگران در اینجاست مثل یعنی من عبارات ایشون بخوام چون عبارات ناقص هم نیست و در جمله از ترد سن حکم شرعی ما در حکم شرعی تردید داریم لا یمنا فجدن معتبر فی بلکه بالاتر اگر فهمیدین بعد بل محل علم بعد بعد ال علم بعدما انضاء ما اگر بگیم اشاره امضا نکرده و معذاره که انشاء عبده هفه کرد این اشاره با دمترس تو ایجا به نکاح رو درست می که ما خوندیم این اشکال نداره اوز الانشاع اعتبار رو منقبل نفس منشه در ایشان مشکل نداره و لا به امزا اشاره فلو اوق الوالد معاملتا رببیه معولتی معلیه به اندم امزا اشاره هین الانشاع سممن کشف امزا اشاره یه کم به سر از مثلا این میدونست که مرتب تو درست نیست انجام داد برای دروز مناسیت مغلط بودیه فقیل فکر این گفت نه آگه روزه میگم درسته اشتار بود اشتار بوده اشتار نه دانستن یا دانستن خلاف حک این جزم شما رو عوض نمیکنه، شما ناشتیم این شای کردیم این شای شما رو عوض نمی کنه ولیزا بکلا یهتم به سهر حتی معامله کفار علا من هم لایست زمونه به شر و امزا اشاره اصلا فه این کامل این شام موضا یو نافیه جن به عدم امزا اشاره فکی از ترددتی امزا اشاره اصلا همه با ساعت به شما اول این بحث یه ریشه اساسی داره که ایشان مثلا مفروغنانه گرفتن و یه خودش یه بحثی که در همون محل خودش که کرا کرد در حقیقت این شام. مشغول بین علماء الانشاغ و ایقا المعنا به لفظ نیم و بحاره نوبر نظرم که جامعه حدمات هم باشه شده به با اداره هسته شرمون موزجه یکی اصلاح جامعه حدمات هم بود دهنه مگه فراموش نکردم اینا چون اعتبادشون این بود خوب دقت بکنیم وجود انشاغی یک وجود واقعی نیست در واقع وجود نداره. وجود انشاغی خصلتش اینه که شما ایجادش مثلا لذا اگه دکت رو کنید از حقیقت نکاح ایجاد علقه زوجیت اعتباریه آها این علقه اعتباریه چرا را این وجود نداره ساید یک طرف مرزید کرد ربطی به هم نداره اون علقه اعتباریه که اسم زوجیت اعتباریه اون زوجیت اعتباریه ایجاد میکنه نیست واقعیت نداره خود مه، مه ای سیطره است. حالا فرض کنید من اینجوری نشستم یه باغي داریم فرض کنید تو آفریقا خب من که اون سیطره ندارم این سیطره کی تر اعتباری این سر دنیای کسی از اون سر دنیا این درین سیطره است اون. مه ایجاد یعنی مه ابراز اینو سیطره اعتباری، زوجیت اعتباری. اول اولین زوج من كل زوجی نیست، چون زوجات کی یا هر کله ممکنه زوجیت تقریبی اون یک رو چه واقعیت یه زوجیت اعتباری در رؤیا اعتباری ایجاد کرده این زوجیت و رضا فریدی میگه در اون حدیث معروف لولا یکن علیلا یکون فاطمه پار فاطمه گفتن ادم فزندونه که در کتب اهل سنت سند زیاد برامش شما برای یه سردار معروف شده این معنی بر اینه که اشارهوشه که زوجیت این دو نور بزرگوار در واقع نه زوجیت واقعی نه قرار اعتباری صرف باشه این نیست که با عرض درست بشه اینه زوجیت واقعی و حقیقی پس ما یک زوجیت اعتباریه داریم این زوجیت اعتباری اینجوریست خب دقیق میکنیم نمیدارم در ذهن موارشون چی بوده مشکوره به این اصولی این طور بوده که این زوجیت اعتباری ضرب آه اعتبار شما ایجادش می این واقعیت نداره. خب دقیق بکنیم این چیزی نیست و این ایجاد با همین لفظه یعنی لفظ پیش اونها تأثیر داره در ایجاد این زوجیه و لذا این حدیث معروف این نما یا حرم و کلام و یا عدد کلام هم دیمه معنی کرده این کلام که این تأثیر رو داره و لذا سابقاً از کردیم ما در واقع این دائر مدار لفظی نه دائر مدار قصد متکرده اون عرضش نداره اون نقردی که ابراز کرده دائمان به مقدار ابراز حساب می کنیم. این بحثاش بودرش یکه تکار نمکن میکنم خوب دقیقیه قصد استاد در اینجا مخالفه ایشون ابراز اعتبار نفسانی می دونه خوب بود که ایشان یا مقرر توضیح می که اختلاف شیخ و مرمون آیکوئی در حقیق این اختلاف مقنائی است و دقیقیه این نوع که به ذهن بود یعنی آیکوئی ای اینطور می گن یعنی توی چیه ارتبار کردی در نفسه اون رو ابراز بکن. ارتبار کردی ابراز ارتبار کردی زوکی ابرازش مکن با زربشت و هم تحت رو اشکال ندارد درست میشه شد خب ها مثلا اجمه آقا مثلا اجماع باید درست مثلا. دقیق روشن شد اما شیخ رو نمیگه شیخ نیه همین که ابراز کردی ارتباره آقای که یک فرض اعتبار نفسانی میکنه کنه اینه که ایشون میگه تردید داری و نافی نره اعتبار نفسانی میگه مقدمات مسیحه در کلام روشد شد پس ایشان فرضش اینه که شما یک اعتبار نفسانی داری اون رو ابراز می مثل مثلا شما اگه قصد حکایت از واقع داری اون رو ابراز می کنید. میشه اخبار اعتبار نفسانی دارید ابراز میکنید میشه انشاء ماهیتاً که فهمی نمیکنه اون چیزی که چرا وقتی فلسفاش میگن و از بس هم چنان اعتبار ایشو میگه همون که شما اعتبار نفسه چون اعتبار کردی همین کافیه حالا میخواد با این لفظش یا با اون دست اون میگه نه اعتبار تنقضی تا به لفظ نظر تو فایده نداره پیدا میکنه این اعتبارش به لفظ میدونه اعتبار اخبار استعمال از درست خود اما اخبار در یعنی یعنی اخبار رکن اساسی است برای برای انشاء نه اینکه فقط ابراز باشه و لزوم بین مقام و با اخبار صرف کلی است البته ابراز به طور کلی یه عنوان انتزایی است عنوان میشه معنی اخبار واجی انشاء باشه اصل اشغال کلی داره کلامه با غفت نظر از این اشغال کلی ببینید ابراز اعتبار نفسانی اینطور نیست که در بابه این شاعیات آلا نیم خواستم واضی این بحثیت جبتان بودی شدیم تک ابراز اعتبار نفسانی نیست اون اعتبار نفسانی تا ابراز نشده اعتبار نیست این نیست که من بیام اعتبار نفسانی بکنم دوم این که این اعتبار نفسانی که من انجام میدم خوب دقت بکنید این نیست که درص من باشه بعد در دنبال امضاء اشاره داریم تعجب از بر من استاد این نیست که درص من باشه من از کردم اضافه کلی ما داریم بحثش رو می‌شینیم من از من عرض به طور کلی چون اعتبار یک امر غیرواقعی است خوب دقت بکنید هر نحل اعتباری که شما بکنید چون اعتباری اعتبار ملکیه اعتبار توجیه مثلا شما شونگیل اعتباراً این فرزند اونی نیست. الولد این اعتباراً فرزند هر... واقعیه که نیستن شما میگید که ولو مثلا شواهد درو رو باز نیست که شواهد تکمیلی بخواد که این فرزندش باشه. اما چون در فراشی کسی دیگری هنوز تا اون بچه‌ونه الولد الپراش. ولل آخره حرم به اینا کلان مقام اعتبار. مقام اعتبار شدن یک امر حیقی نیست. ما در اونجا کرارن و مرارن تحسیص احسیل کردیم هیچ وقت امر اعتباری از مکلف به ما رو صادر نمیشه هیچ ما با نیم اصلا شعن مکلد اعتبار نیست هیچ مکلد نمیتونه امر اعتباری به اعتبار, اعتبار, به اعتبار حتی اعتبارهای بسیط مثلا درکت نماز کنه با امروز اعتبار به شما ظهر نخونده این رو نمیتونه انجام بده این یه نوع اعتباره. اعتباق باب اعتبار یاده باب واثعی، یعنی ادود در نماز، این نوع اعتباره. باب وکالت، این نوع اعتباره. نیابت، من نماز بخونم از طرف پدرم، این نیابت، نوع من میگم چرا؟ چون من تا نماز از خدا برای خدام. نماز بخونم؟ مال خودم نه. من منو من من من از من پدرم است. اینی که بخوام نماز رو که تکلینا از من صادر شده زیارتی که تکمیلا از من صادر شده این زیارت برای تذر قرار میشه اعتبار؟ عقد محب بکنم زن و شوهر دو نفر م... زن و مردی که بیگانه هستند بخوایم اینا با هم زوجیت اعتبار دوست میشه بون پس اعتبار یک عرض عریضی داره خیال نکن فقط عقوده یه قااطه باب نیابت اعتباره باب وقت اعتباره باب نزور اعتباره باب شروط باب شمول اعتبار وقت ما یه تحسیص کردیم کل امور اعتباری از مطلب به ما و مکلف صحیح نیست طبیعت اعتبار باید از مقنن صادر بشید حضرت استاد من نمی کنم که توجید کلمات کلماتی رو دقیق بکنید اصلا طبیعت اعتبار اینه باید از من به دهه اعتبار صادر بشید بله این دو جوره یه دفعه احتجاعا خودش اعتبار میکنه این یک جوره یه دفعی مکلدت اعتبار میکنه باید اون رو امزا بکنه تانکون رو اعتبار ارزش مشناه که میگه با علم از امزا اشاره من میتونم ای اعتبار میکنه. این اعتبار میمیم این لغلغه لسانه اگر شاره من نمیگوش کنم که از طرف مید نماز بکن نماز باطل بود رو من درده بگم نماز برای مجد یا برای حل یا روزه برای حل یا روزه برای مجد تمام این اعتب لذا الان مثلا قلعه میگه در عدول در نماز اونجایی که نفس داره قبول میکنیم بقیه قبول میکنیم چون خود خودو عدول اعتباره بگهد کنیم مریار اعتبار چیه؟ مریار اعتبار هر امری که خلاف واقعه چون خلاف واقعه دلیم کنیم نمیشه از اون طرف هم که چین حقی رو نرداره از این مکلد دماغ و مکلد چین حقی رو نداره که اعتبار بکنه این اعتبار فقط یه از روشن شدید به زیاده شرای واقعی بوده در به یا من خود سدازم بگم این وقت نمیدید وقت نمیدید چی شد پس بنابراین این مطالبی که ایشون فرمودن مکلفتی تونه اعتبار نفسان کنه من رو واقعی در امزار اشاره این ازشان این اعتبار نید چون وجود اعتباری باید توی درد خودشه تاثیری نداره. لذا اگر ما بو بشه قاضی شو مراجعه از طرف دیگه زیاد انجام می‌ده چه قاضی باشه. ولزا موی اینا بسیار مهمی از در باب نیابت از کل عنوان مثلا بوتی چون امر اعتباریه انهای اعتبار ممکن است تصبور بشه. این میان مقام شجاعت چند تا مقام مقامش خیلی زیاده. اعتبار دیگه. مثلا ممکن است در باب نیابت بدن باشه. ممکن بردن من بشه بردن اون آقایی که در دفتاری توماتون ممکن تنزیل عمل باشه این هم ممکن ممکن تنزیل سواب باشه بگیم دکت بکنی یعنی این عمل از تو صادر شده بردن تو بردن تو تنزیل نکردی عملم عمل تو عمل سواب روشی بود میگی به رضا نتیجه چی اینه که تا هم سواب میده شون بدن اینجام داده عمل هم دکت باید. این زرافت های نکته های پنی زباب اعتباری ممکن است تنزیل بدن باشه ممکن است تنزیل عمل باشه ممکن است تنزیل ثواب باشه ولی ازام نکیجی گیری کردیم که از مجموع این اینجور در وردیم تنزیل بدن مطلقا نیست در واجبات تنزیل عمل در مستحبات تنزیل ثواب در واجبات از عدلهش در اینو مقام استظهار برد توی اعتبار همش این خیلی نقطه لطیقیشون نده باشد این خیلی ضریبی در واجبات تنزیل احمده چون اگر تنزیل احمد شد نتیجه زلمه اون به هم فارغ میشه اما اگر تنزیل توابون زلمه فارغ میشه اما همین اگر آمد گفت که این درسته زلمه اون شد ولیتا مثلا اگر رقایت ما این باشه چون اهل سنت گفتن سوابه مثلا نوازتر میگوخی دیگید چی اه... اون الامات ابن آدم عمله او یا عملهو الا من سلا ولد انصاله و صدق از جاریه اگر اونجا سواب گرفتید برایت زده نمیشه برایت برایت این فرگیه آن من اون ریشه هایی بخشتون از کرده؟ اون نکات تنیش اینه اون علمی خوفش اینه ما تنظیم رو چی بزنیم تنزیل. مثلا در مصطحبات انصافه تنظیم ثواب تنظیر عمل نیست. عمل ماره بنده و نظاه هم وارد داره که خواهد ثواب میداریم اونم این اینه تو ثواب میبرید نه احناد عمل عمل توست اونم ثواب میبره پس این با اینجور تفصیل می این روایت مبادش اینکه تنزیل تواهره نه تنزیل عمل هیچ کدام تنزیل ببنید پس آره خوب دکت بکنید مثلا نکاح و لذا ما اینو رو توضیح داریم علاقه و تا بعد این رو در معنا کردیم هر عقدی یک محصولی در شرف خوب دکت کنید شما در اون عقد اگر خواستین تو مقام این شا لحظ کاروانی خیلی نقطه فرمیه اون لحظی را به که با اون مقصوده بسازه مثلا شما در نکاح چه کار میکنیم؟ زدیگه خودش به اون شوارد میخوشه؟ اگر فروشه در بوده به کاروانیم باید که بهت فرسیم اگر فروشی نیست در اون اولخه یعنی خوب دقت بکنیم حتت هم تو آم در ممکن است که وجود این که تو ندارد یا مزندارد. اصلاً اولین زوجیه است. اصلا تو هم نیست. ما در باگنکا نظرم این دلیل ای یه اولین رابطه بدرستی ایجاد میشه. زوجیه اعتباریه باریه. هدفش چیه؟ پس چه لفظی رو در رو به کار میبریم در باگنکا زبرش چون لفظ زبرش تکه در لغت زوجیه. اما اگر گفت مدکه از تو که میشه به مرازه ده. چون مدکه از که هم از تو یعنی انتفاع یعنی بحب دری یا اگر گفت بحب تو یا اگر گفت مثلا به تو نمیشه نمیشی خبیه نمیشه لذاییان الاغود تابع سنده حصول یعنی عقد رو اون سیله رو اون سبب رو جوری جایی کن که با اون محصد عمد و قرمه. مثلا در باب بید منلک تو من که در باب هبه منلک تو که در باب بید نیمیشه که و تو که در مقابل این که تو ته بولی اون دو تا بولی هبه معوضیه حساب داره بید حساب دیگه داره هم معامله یه مقصدی داره ولی لذا در باب معاملات خوب دقیقه اول بدینیم مقصود چیه اون منشه چیه چی کار بکنید؟ دوم نصبات بیاد سه مکلم این معنا رو ایجاد کردن، البته شرطش اینه تا شاره امضا نکنه، فایده نداره، وجود پیدا میکنه پس اشکال ممنوع است، اینه. ایشون تصور کردن من اعتبار نفسانی بکنم، ابراز فقط، ابراز, ابراز. بعد از شد که این اعتبار نفسانی به اجازه داده میگی شو این نیست، یه این حقیقت اینجاست. اگر من میدونم این نه شارعه این نکاح رو اجازه نداده یا مرد ندارد یا مرد ندارد اون وقت خوب درگرد من ترجم از فرم استاد اصفا که اجرم مرمونش که قصدش از تردد در اونجاست نه تردیدی که شما با این انشاء میکنید خوب درگرد بکنید مثلا زربشت بکنید نفضی این را این نیست. مرادش اون اشکال راقیی تو عقده یعنی شما باید عقض روچوی انجام بدید که با اون لفظ ایجادش بکنید در برای اعتبار حالا بخواد توش این بیاری یا نیادید به هر کردید؟ این هم نیادید این نقطه پنیه این هم نیادید شما اگر ایجاد نکردین و یاد دانستید که شعر او اولا ایجاد شما سرسید رو بنادار که این ایجاد در اینجا یعنی ایجاد با امزای شرکی بدون امزای شرکی این ترسلی ای نداره که ایش بایده نداره لذا محروم استاد که دویه پیش آمدن اشکال البته اشکال محروم شیخ علاقه نجوانه روشن شد من دیکه شدیم از بر... برام نبود وارز بشم که این بعد و اشکال که کردن اما استاد میشه مفرک کرد اگر این معنا منافی با جمع و درمیت باید بگیم امتصال اجمالی در حقود مطمئن درست نیست ولو با عذر نترک کنن از امتصال کردیم امکان ندارستم چون اشکال در همه سوالش هست من مطمئن باشم یا مطمئن نباشم ها اگر یعنی اشکال روشن شد یعنی بخششو موردن در یعنی اگر این اشکالی ها در کند موارد بیار حتی این ها تمام خود نداشته باشیم چه باهم میکنیم؟ اشکال اشکالی بیجه باهم جرد که نبود نیست دیگه در اون جرد نیست پس بنابراین باید این مسئله فی نقصه تحریش بشه که مراد از نیتی که در باب رویت آخر چیه؟ و اون که منافید چیه؟ و چرا در وردیع سولار میشه در جسار نمیشه ان ما الان دیگه جوابش نمیدیم اخر بعدش همین مثلا میخواست کلمه دوستا تمومش رو کرد نشد دیگه این اصل اشکال مطرح سوال جواب نمیدیم چیکارش میکنیم و صلی الله علیه و